بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازم نهایت باره وای بر هر طعن زنده عیب جوی که سروت را انبار کرد و آن را برشمود می پندارد که و عمر او را جودانه می سازد نه چنان است که او می پندارد یقینا در تما یعنی آتش انداخته می شود چی چیست را آگاه ساخت که حتمه چیست؟ آتش افروخته است که بر دلها سر بیکشن بیگمان این آتش بر ایشان بسته شده است در ستونهای درازی